ای پسته ی تو زده بر حدیث قند مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند تو باز قامت تو نیارت که دم زند زین قصه بگذارم که سخن می شود بلند خواهی که بر نخی زدد از رود خون دل در وفای صحبت رود کسان مبند گرد جلوه می نمائی و گر تنه می ما نیستیم معتقد شیخ خود بسند زاشفتگی حال من آگاه که شود آن را که دل نگشت گرفتار این کمند بازار شوق گرم شد آن سر خط کجاست تا جان خود برا تش رویش کنم سپند جایی که یار ما به شکرخنده دم زند ای پست کیستی تو خدا را به خود مخند حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی دانی کجاست جای تو خاره یا خجند